اوضو بلله من الشیخ بسم الله الرحمن الرحیم و لله رب آمین و صلو اللهم علی رسول الله و آله طیبین و طاهرین و معصومین و نهتو دائم اللهم و فغن و ورحمنا برحمت کیا ورحمت باشمین بحثی رو که ما داشتیم بحث رشت بود و عرض شد که مرموم شیف مجموعاً چند که هفتا در مصده بشت مفرد مصدر کردن یکی خکم تکلیفی شخورمت بود یکیش بیان موضوع بود که حقیقت ای کا در کاشیرا درباره کردم به جرج اوفی یکم اقساغ رشد و بحث آخرشونن حکم بظئیه رشد که واعمله حرام باطل یا نه در حکم رضئی قاعده به صحت معامله بدن شدن لکن در یک صورتش که بگه این اصل رو و الله در بیاد اونجا رو گفتن باطله ولی بقیه شو درست خب این مناسبت متعرضه دیگه کلمات و استاد رو نکنیم آن خودشون خواستم خواستن که استاد بازه تفصیل دیگه ای در داره وضعی دارن دیگه میشه مراقب کنشون و کلمات مرموم یعوانی رو در اینجا تقریبا کامل کنیم که ایشان راجع به حکم تکیفی که حرمت باشه اشکال بده کردن فرمون در معلوم نیست خود قرش عنوان مستقلی باشه راجب و حکم وزئی هم هوافر اما دارم همون پیار بودن به استثناء اون قسم که شیف هم بله کار دیگری که ایشون انجام دادن خوب بود تحریف دفعی و از قرش قراره این خلاصه این دو کلمات رو که ما ممزای بحث خرار دیم پس خورم که این مطلب که اصولا قرش در روایات آمده بر. از زبان خود پیغمبر اکرم و اضافه در اون عناوین دیگه‌ای هم که اون هم شبیه قرشه پس این مطلب رو طوری که ما می‌دونه انصافاً اتفاقی است مثلا مع قرشها قرشه نما فقط می‌مند تا جهوای جعفری ترمذی ترمذی رواه حسن و حدیث حسن و صحیح که من قشنها فلیسه منی راجع به اون به اصطلاق بحث رو انجام دادیم و ارز کردیم من قشنی فلیسمنی در کتاب در کتاب مسلم هم نه شده ارز اونجا فلیسه منی ارز که و به مناسبت‌های های دیگه یکی دو برو دیگه هم نرد شده که مشابه با همین عشق و عرض شد در روایت ما هم آمده سنرش روشنده بود اما در روایت احلی سنت طبعا که پیغمبر یک خورمایی بودن کسی خورما می شوشه و ظاهرش که خوبه در زند باطنش از شراب بود خورمایی قدر روزی برشت و, و پیغمبر بودن من قشنا پلیسه می دونم پس روایت در اون جهت آمده، شهر نزولی داره یکی هم طور روایاتی که من خوندم به اصطلاح معروف است به روایات تصریه تصریه تو غنمه ولی به تصریه باسا ورا ویا اصل سرا اصل این به اصطلاح به اصطلاح اصل کلمه تصریه یعنی احتمال این ها از لفظ های مصد و از الفاظ قبیل باشه عرب جاهله باشه هستش از حفظ کردن تصریع ما یعنی آب رو نگه دارن جلوه آب ببندن تا آب زیاد بشه مثل این سر میبندن و تصریع در میان عرب متعارف بوده در جاهلیت دو سه روز شیر شطر رو نمیگرفتن نمی به شیر بوستن این پستانش بزرگ دیده میشود وقتی مداری میفروختن طرف میگه این خیلی مثلا پرشی رو بعد که میدوشید نه حیوان عادی آدیست اینقدر پرشی رو نیست این تصدیل این زیربنا بوده برای مسئله غشت یعنی مسئله غشت رو این دو سفا بوده یکی محفلات باید تأبیر شده محفل اونم به معنای جمعه حالا ما در فازی محفل میگه مثلا محفلی تشکیل دادن یعنی مجمعی تشکیل دادن گاهی به با اون محطاص میکنن مورد از محطلا شطرهایی بوده که شیر دورران نمی نون این بزرگ میشده جمع شده جمع خیال میکردن مثلا شطر رو یا میگن گاهی اوقات به بوسفند زیاد علف میدادن دادن تو ایران که معرو ها آب ونم می نگهید نش بکنه آب ننگ شش بزرگ در تا دا دا هر میده که مثلا این گنده مثلا نوشتن رو این گنده مثلن چشی حامله هستن بچه داره. حالا در خلال این مثال هایی من همه از تاون مهمی ابن قدامه این چاپی که با شرح کبیر یک جا شاپ شد چه به مناسبت از صفحه هشتاد وارد بحث تسریه شده چه قبل از هشتاده؟ اونه که ما الان داریم اون وقت انواع بعضی از انواع مثلا غشت ها رو اوبرده به این مناسبتی مثلا فرصید برای اینکه نشون بدن یک غلامی بخواستم بفروشن دردهی یعنی آقا این نویسنده از ماهر سر ناخونهش سیاه می‌کنه سر انگشتاش با مرکب یعنی حسبت نوشته دستش مثلا سیاه شد. البته می‌خازیم اینا مثلا بیسواد این حالت نشون نداره جهلی. انواع جهل‌ها رو به یک مناسبتی در اینجا داره. یا موش سفید می‌کردن، سیاه می‌کردن برای اینکه خیلی جوانه. الی آخری انواع ها رو در اینجا وارد کرده. لکن اونی که خیلی متعارف بوده و رفسی بوده مال گوستن و شطور بوده تو روایات هم گوستن و شطور آمده همین که گوستن و شطور در روایات آمده این منچه شده که اده از اهل سنت، بگم در گاه نیست از ظاهری ها من هم ظاهری خیلی به ظاهر احادی سمسط می کنن چون در روایت درنات و سرول ایبه و همه افتن اشکال چون و فقط در گاب اشکال نداره چون که فقط شطور و میزنه نمی‌سرم نه گاو که اشکال برنه پس اگر شیر گاو نبوشه تا پوسانش بزرگ بشه درون اشکال نداره که مشهور علمای اهل سنت فرق بین گاب و اون دو تا حیویه دو حیوان دیگه نکرده این به هر حال این یک نکته خوب دقت بکنید من الان این مقاله عباراتو می‌خونم تا بعد و یک چیزی هم که بعد‌هاست جا افتاد که در روایت ما هم وارد شده غیر از حالا این قشی که متعارف بود که الان زمان ما هم دلومتعارفه اون چیزی که جا افتاد مسئله دنانیر و دراهن محشوش بود ولی از اگر یادتون با رو بکنیم اون روزی که ما عبارت شیط رو خوندیم و همه خبر دینار بینار لوملده لو این این فقاحت شیط جده با این که مراجعه نکرده به کلمات قدما و تاریخ مسئله با که ما فقاحت خودش تو ضبق فقاحت خودش تحرینی خبر باید یه چیز غیر طبیعی باشه القیق البالوه مثلا. حتی لای و باشیمون تیه خشون ببینید ما یه چیز داریم در دراهیر مخشوشه اون خودش عنوان مستقل بگه دراهیر مخشوشه پس که مثلا الان شما یه چیز داریم با عنوان که پس که مثلا دیگید که شیر توش آبه ایله نه دلار مثلا تقلیبی پول تقلیبی اصلا پول تقلیبی خودش یک عنوان دیگری داره اصلا کارم شیخ به زبان را با اون ارتکاز فیخی خودش منتفق شد که مسئله درام مخشوشه فرق میگنه و اما خبر دین لو رو عمره به نوار رو گوش کنید دسته بسکیش من اصلاح اصلاح اصلاح اصلاح جهن بود اصلاح این دقت و چه شیخه حس کرده این خبر عادی نیست اگر پس می کنید کسی خورمای بد و خوبی خورما میگه خورما رو برید تو بالوه برید تو چهار یه هم چهار بریم برموده ما چطور شد تو دینار مخشوش فرمود این مخشوشی گفت عرقه ایف البالوه ای و وقتی هم نگاه میکنیم به فتاوای عبر سنت میگنیم ادلی از اون هم همه میگن تو دیناری که میاد یا تو دیره همه مخشوش میاد همین نکته رو میگن. و شبیه تغییر امام رو به کار می‌ذارن من اگر یادتون باشه نگاه کنید اونجا اون روز اشاره کردم حالا امروز کمی چند روزی که روايات اصحاب رو کنید. حالا یه به روايات اهل سنت رو متعرض بشیم و بعضی از ذرافت هایی که مثلا من با مثال چطور شد اصحاب ما در اینجا قائل به خیار تدویج شدند ندوختن را مثلا یک چطور ریشیش زیاد کرده بود خب بعد گفتن خیلی خوب. الان بعد معلومه که این شیرش کمی زیاد نیست. یه دو... دو... روز دوشید دوشیت پوشه شد جنگو شد دیده. نه از اون حرفی نیست. خب چرا قائل به اختیار تغییر شدن یا اصحاب ما به اون از همان معامله فاصله؟ و چرا قائل نشدن؟ به اختیار عید نشودند؟ فکر می‌کنید؟ اینها منشاء شد که در جامعه اسلامی یا وشوش این خطوا مثلا خود مردم ایرانی هم قائل به از مقدس عرضه بیلی نرمو کردیم از محقشتانی که احتمال فساد داره است و معامل مخشوش باشه بخاطر حلود نه این یک دو خوب دخلت کنی اضافه بر این که خیار قاعد که از فیغم برای اکم نرسوی کنان ارزو این خیار رو هم خیار تدریز گرفتن دقت دقیق رو کنیم نه خیار ای چون خیار تدریز خیار طبع از سفقه این خیارایی که اینا تماما سنایی هستن غط ای به سراسیه این هم برگشت ریشه ها روشن شد داره سن. برگشت به اون سنت رسول الله که ایشون در شصوری که مسرات. مسرات معنس مسرات ما به تقیید تصریه یعنی حیوان رو که چند کردن شیرش رو وقت در ابل و در شاط یعنی مسرات با طایه مدربت محبوطه بود این در ابل مسرات پیغمبر حکم به ارش نفرمودن خود لذا خیار سنایی در نه سلاسی. این خیار در اینجا این خیار خیار سناییه خیار تبلید خیار سناییه نه خیار سلاسی پیغمبر نفرمودن میتونه شکر رو نگه بذاره ما به تفاوت بین شکری که اصلا پستونش که این بزرگی باشه یا کوچیک باشه معبره تفاوت رو بگیره خوب دقیق نه همونه عرض رو بگیره سر این که این تبدیل شد به خیار سنایی خیار تبدیل سرش اینه پیغمبر در اینجا فرموند به این که میتونه شسار رد بکنه چون شیرش هم دوشیده دیگه خورده شیرش هم گرفته به همون اضاع شیر همین مدار خورما رد بکنه نفهموندن میتونه نگه بداره بیاد به صاحبش بگه تو بیا معابه تفاوت به من بده چون این یک تکلیف زائدیه میدونی که اندازه فرمی در باب معاملات یک نقطه زائدیه در باب معاملات اصل اولی اینه یا معاملات رو نگه دار یا معاملات رو پست چون تو با معاوضات باز فنونش کاملا دستون بیا یا امضا بکن یا پست بکن اما امضا بکن و مابه تفاوت رو بگیم بلقیه یا معامل صحیحه یا معامل فاسده این که شما معامل قبول بکنید در خیار قبل کسی ما به تفاوت نده در خیار تدیس هم نمیگیم همینجا هم پینا بر این سر این مطلب است که فی ما بعد بخیر خیار ثابته و خیار و مثل خیار عیب هم نیست که به طوانت عرش بگیره بیاد بگه مابه تفاوت رو میگیریم این یه مقداری من عبارت اهل سنت رو در باره همین تصریعه میخونم حالا بله رابع خیار تدریس هست مناسبه به ما یدید و سمن که تصریعت لبنس زر زر با غاد به معنای و این آخرش میبینید بیرانای پستان پستان هیوان دیگه چند تا مثال دیگه داده بله فهازا یفته للمشتری خیار رد فقط چند تا مثال رو نمی بعد معنای تسریه ببینید بعد چی میگه و تسریه تو حرامون اذا اریده بها از تدلیسا علی المشتری هست من در راحتی که روایت اهل سنت خیلی چند تا روایت دیگه هم اضافه کردین لقول نبی صلی الله علیه و علیه وسلم لا تو سر رو ولقولیهی منغشنا فلیته مننا رواه نموجه به اصناد یعنی نبی انهو قال بی المحفلات خلابتون خلابه این فری محفلات یعنی حیوان هست که انسان گنده بکنه بسید الان توی توی متعارف ایران هم شده هم نجا هستیه بشه آب و نمک میزن شکنه گنده میشونه شده میکنه مثلا گوش ده بی المحفلات ولا تحل الْخِلَابَتُ لِمُسْلِمِه ما از سر مئیاتون باشید در که مرحومه به اصطلاح محب غربیوی میگفت نه شده از غش شاید مرادش اینا باشه به جوری که مثلا بیع المحفلات خلابتان ببینید ولا تحل الْخِلَابَتُ لِمُسْلِمِه ممکن از این محس انسان داره که بیع باطن الله تحِل وقتی بگه فریب، وقت میگه خود بی فریبه. فریب جایز نیست. پس احتمالا معناش چیز بی این بید جایز نیست. این بی نافذ نیست. این تحیید کلام معقیقه از دیگه این برگردیم دکتا مقاسب و شدیه این هم ما داریم. و رواه ازنا عبدالبرد لا تحل خلافت مسلم و فمنشه ها مسرات ها این بهی مثل انا و هولا یعنم تصفیت ها فمه لحو فمه معلم ببینید فلحول خیار و فرد ولی امساک دقیقه میسی شد این خیاره این مثل خیاره ایبنیت ها یاد بگه آتوه این حیوان من دو این همچی حالتی گاش شطور با این پسان قیمتش مثلا ازار تومنه با اون واقعیتش نحسد و مثلا شست تومنه تو بیا ما به تفاوت نگرد به من بده من نگارش می‌نم این دیگه اینه خیلی ذراحت کاره اونی که از پیغمبر نقل شده خیار سنایی سال اصطلاح من از این کتاب ا من نگیدن مگر معاصر متین نوشته باشه بهلاچکی تمام فرقی راست تغییر خیار سنایی و چرازی این تغییر من برای تضییع مطلب و اشتباه نشه صلاح نمی من اصطلاح رو بکارنم این خیار سنایی باز در خود خیار سنایی خیلی زرافت کاره تو تدریس خیار آمده شده سنایی اما تو خیار A تو A شده خیار سراسی میتونه حیوان رو نگه بداره اگر بعد از اینکه خیلی من تو پا شکسته میگه نسبت بین اعرج و سلیم چقدره؟ اعرد شر حیوانی که شر باشه اینقدر سالمشه اینقدر تفاوتشو بگیره اما پستانش ای یک کچی رو بزرگ بود خیلی این زرافت اگر بهتوانیم این مسائل رو هم از دنیای روایات بگیریم و هم در دنیای اصطلاح حقوقی زمان خودمون این رو تفسیر بکنیم چون ممکن است الان مثلا در دنیا حقوق بگن آه چه فرقی میکنه؟ حیوان پاش شکسته در بیها؟ یا حیوان فرصوی؟ شما پسونی که بزرگشون دادی ایش که میشه دوشیدیم پسونش شد؟ چطور توی یکی میگین عرش میتونه بگیره؟ توی یکی میگن هر شنوندگی، اون تفسیر فنی. منو دنبال از تفسیر فنی، تفسیر استدومیاری حقوق قبول کنه دنیا قانون قبول کنه بدون تعبود و نسوز. ما چه تفسیر قانونی و اقلایی میزنیم برای این مطلب بدیم؟ بین خیاری که سراسی است، آن هم نسال خودمون. شتر فروخ پاشل درمان. یعنی آسون تنه ای خیار بگیر، هر رو با پستان بزرگ فروخ خراب میکنیم با این پستان 1000 منجم داشته. پستان آدی داشته باشه. نوسه اشات چه جور تفاوتش با مثلا محاوره این چرا اینجا اینطوره غیر از حال نقطه‌ای که روی دال که ابن مسعود این من اقوال اینجا میخونم معلومه این بحث از زمان صحابه مطرحه از ابن مسعود و ابن عمر و ابی حریره و انس و این مال صحابه بعد میاد عصر تابعین و ها وزه علیه ده هده مالک مالک جزو فقه هاست جزو تابعین نیست و ابن عبیلیلا که جز تابعینه و شافیه که جز فوق هاست و اسها اصحا... اصحاق ابن راهغی اهل خراسان بوده وی ارز کردن در غاش فارسی به معنای یا یا که الکرسی این بگه پیلرم وقتی ما به دنیا آمدیم یه راه بودیم و اینه من روی همون به حساب میام الاغ سال کردم میبرم که مثلا بچه راهی اینکه من سر راهی بودم زایما تو راهو اسحاق بن راهوی و ابو یوسف این شاخه در وهنیزه جوزق اوغاز بس و و اهل علم عامه اهل علم اعتقادشون اینه بده فکر اینم اینا تحلیل بکنید ها من یواشوشم ها زه باز میکنی چون من, من اجمالا از که انصافا نگاه میکنم هر پری که صنیع راجع به ساله بیزند دیگر ساله میکنیم چنین چنانو خدا اون هر پری که خوب خیلی که رجیل درست, درست میگه. اما انصافا هم این ساله اصلا خیلی بعضشون عادی عادی بودن که امیر ابن مسعود چوبان عادی بود من دیدم بعض اهل سنت نمیشن ابن مسعود هر چی در بیت اسلام یا یعنی نه گری استلامش اصلا نه هر چی هر عنوان صحابی رسول الله هست. یعنی افسس تو این مقام رسیده مال صحابوزر. بخیر اینا واقعا هم انصافا یک تاثیر تو اسلام دارن اونجوری که افراد خیلی عادی، توپان عادی بیاد مثلا بگه در باب تسریح یا شناایی در اونجا خیال سوناسی. خب خیلی واقع روش تفسیری میخواهد حالا کانالمون هر پره که شننده رو صاحب می‌سازه. و ذهب ابو حنیفه مورد ابو از اصفاقه هاست در مقابل اونها و محمد محمد در اصطلاح اهل سنه در کتب حنفیه مراد شاگردش محمد ابن حسن شیبانی چون ابو هنیفه شاگرد محروف داره که همین شیبانیش بهش محمد میگه یکی هم ابو یوسف محروف یه عبوبن فلان. الا انهو لا خیار رحب دقیق بکنی اولا مسئله پساد رو تو تبلیز و توی غشت محرح نکردم. دو حتی گفتن خیار هم نداره معامل تمام حق فضل هم نداره دلیل لعنه رالکه لیسه به عیب یعنی تو زهن ابو حمیده بوده که اگر عیب باشه باید سلاسی بشه بسی این عیب نیست به دلیل انها لولمت کن مسرات شاهدشم اینها حالا اون تصریح نکنه میگه آما عمر شطور چند ساله مثل شیست سال متعارق رو عمر شطر ساله فرض کنید مثلا از اون روز سال بیشتر حساب میکردن روی اینکه که بچه دار باشه آمره باشه و خدا نور باشه و روی شطور خیلی در روایت زکات و غیر زکات ما در باب دیه و اینها اسمهای مراحل عمر شطور حساب شده چون شطر مال اساسی شطور به سهرم بود خیلیه اون معالان عمرها رو فردا در تاریختون بلد نیستون باشه فردا واشا اسمارش بود باعث مثلا طرف سی سامویکساونا فکر نمی‌کنم ببین مقداری که اون عرب اون زمان اعتماد به شطور داشت حاصل باشه خیلی که بلد نیستیم بعدن میگه در تاریخ نشه نگاه می‌کنیم جزء آثار باستان زراند بندهن که کلیت به ادله ان هاله ولات کن مصراط اگر فرض کنیم مصراط هم نبود بیا این چند سال از 6 ساله خب شلون 6 ساله فرض کنیم مثلا این نبوده که روزی مثلا پنج شیرشی بود که میگه اینجا روز سکی میشه میگه شما جیرشی میگی که حساب درش میکنی نه خیار تدلیس میدونی نه خیار عید میدونی مترات هم همون شده این یک احتمال احتمال دیگه من میدنم که شاید ابو حنیفه اینجا نمیشه. شاید ابو حنیفه بوده ما قائل بوده که از درش و تدلیس خکم وضعی در نمیاد. نهایت حکم تشریحی در میاد احتمال سه مال میگم حالا بله به دلیل ان ها لولا تکن مصرا ها اقل داشتن من ها همشون مثال شیست ساله، شیست ساله. هم مثال ار کردم عمر 6 ساله 6 ساله تسیری نکردم روات عادی اما گفته 6 ساله خب در اصطلاحش 6 سال و 5 باز ببین 5 بره وقتی برای خونه بره. اینجا شما یه خیاره آن ای آنگاه رو شیش سال شد دلاخره فرمسان عبد میفروختن جوال یا آیا عبد شما چند سال شد بیست پنج سال عبده بیست پنج سال خیلی خوب میتونه به دوباره یکی نمیتونه به دوباره مثلا ای نداره هم نداره و تدریس به ما لیسه به ایه؟ اگر ایه خیلی عجیبه این انصافه ماها خیلی کلمات اینها رو با عنوان اینکه مثلا با اوه حالا چونیم، اما عرض که ما کار به شخص نداریم، آن زل و منقال، آن زل و منقال، تو ماقال درست نیست، ادبیان بود بیش از آن زل و منقال، آن زل و منقال، زیرا ادبیان نبودیم حالا به هر حال، اشکالی نیست که در انسان آن زل و منقال، آن زل منقال، به هر حال. در بحث بکنه با حرفا اینطور نیست که خیلی یکی از عوامل مدت این بحث میมาن ما اول فکر کردیم نه علاصول خیلی پر پرلا هست که حرف طرفاشونی باعث بشه نمیرا فکر کردن چه چرا آقا یعنی باز تدلیج به مالیته بده این اشغال زحف میکنین میگه اگر شما بگید این تصریه عیبه پس سیاستون با سراسی بشه چرا سونا کرده اگر تصریه بگین عیب نیست پس این اصلا اختیار این حد وسط رو که شما خیالش رو اثبات کردین. و مخصوصاً من چند بار عرض کردم یکی از اونها بسیار مهم در ابو حنیزه پیش اهل همین جور آرايشه یعنی به اصطلاح ما مثل این گردبیاتیه دنیای حقوق کار میکنن اصلا تو این مسائل از روایت نبوده که قسم که بوده خیلی سریح نبوده لذا ایشون رفته رو همون قواعد مخصوصا که ابو حنیفه خیلی مغیض به اقوال صحابه نبوده. اینی که در عبارات مادری که از امام صادق لعن الله ادهنیزه کانیقول کانه قال علیون کذا و نابون کذا، البته درست این مطلب، فجرای رو مؤمنان نشون این سوغات میکنه، لکن امام صادق روی امیر امیرالمؤمنینش تاکید کرده. در حقیقت ابو حنیفه به ابد الکریم مشهودا اعتراف میکنه به عمر هم اعتراف میکنه و ابو حنیفه بیتره اعتراف کرده. اصلا ابو حنیفه حرفش اینه که سه هاون بشر بودن اگر مطلبی از قرآن از رسول الله نقل کردن به ما نرسیده خیلی خوب صحابه ام در ذریعه اما اگر رأی خودشون و تحلیل ذهنی خودشون و تحلیل خودشون هم رجال و نحن رجال اینطور نیست که ما مقلب اونا اینه که در روایت ما اسم امیرمون برده شده درسته اما در واقعش مقید ظنی و مذهبی نیست. صاحب کلا، مثلا این چه شون که ابن مسعود هست، ابن عمر هست، ابو هرره هست، نه و انس هست، نه حاصه از صحابه. ابو حنیفه مقید به صحابه نره. اصولاً یکی از ثونه بسیار مهم، پس دقت کنید، ابو حنیفه حرفش اینه که شما اگر عید گرفتین، خیار رو ثلاثی بکنید. اگر عید نگرفتین، خیار نمیاد. عقل لازم این بلقه شما آمونی در مصد یک حد خیار رو ثابت کردیم. این رو از چرا؟ و تدلیس به مالی سبعه لا یوسف تلخیار کما لوالفها اش علف بده به حیوان فنتفقه بطنها و فرمد المشتری انها حاملو این اشکال اشکاله به استدلال سعر و, و مشکل ارز کردنیم دروس را به صحابه این حرف بزاره از اون طرف هم نسبت داده شده در وهن اینجور به, به سر رسول الله هم که این تقید نمیشه که به صحابه باشه عذ کردم این رو چند بار عذ کردم ابن خلدون در مقدمش میگه ابو حنفیه اعتقاد داشت این احادیثی که از رسول الله 17 سالی و ثابته در ثابتی ثابت ابن خلدون خود شافعیه و ადამიანهای اهناف رد کردن برایشون من میگم همیشه منصف باشه ადამიანهای اهناف گفتن بی خود گفته ابن خلدون. و ابو حنیفه را داره. لکی در کتاب تاریخ بغداد جزه 14ش که راجع به ابو حنیفه چند صفحه پسرا انصافا خیلی جمع کرده. خیلی چندین صفحه راجع به ابو حنیفه میشه تقریبا نصفش مذهب ابو حنیفه یا کمتر. بیشترش زبان ابو حنیفه است. خود صاحب تاریخ بغداد حنبلیه. چند بار عرض کردم حنبلی‌ها به خصوص ابو حنیفه خیلی بدند. چون احمد احمد بن حنبل به اصال مدرسه و مکتب حدیثه و ابو حنیفه مذهر و چهره معروف مکتب رعی و اشتهاده رعی و قیاسه و این دو با هم کاملا متضاده حدیث و رعی نظاه ها یا کسانی که دنبال احمد بن حنبل هستن همیشه تون رویشون با ابو حنیفه خیلی زیاده خود بخاری به شدت با ابو حنیفه مخالفه خود بخاری معروف به شدت محدثین و ه به خصوص با ابو حنیفه خیلی مخالفه. در اونجا نعقل میکنه چون ابو حنیفه قالی بخیار مزیز هم نبود یعنی <تصفح> چون این خیلی اوزار خرابی داره اینچه این کتاب فخرازیس یا فخرازیس امام الحرمینه ایشون شافریه هستون شافریه میگه با اما ابو حنیفه فقط قلق از شریعت غهرنده بر مثال شریعت چفه کرد شروع وارونه کردن کلم تعبیر اون من چرا هر کردم مجموعی تعابیر که اهل سنت راجع به ابو حنیفه جمع کنین و اون چیزی که از ائمه ما یعنی امام صادق به بعد راجع به ابو حنیفه آمده هر کدما خیلی کمه شد یک دهم حرف اهل سنت اونایی که اونا نشدن خیلی بیشتر از ماست من چه عجیبه این واقعا در کتاب تاریخ بغداد نقل می‌کنه که ابو حنیفه را چه اختیار من چه سویشون ممکن است داره اطلاعات اوفو بالاغود رو قبول میکنه این سنت رسول الله که آن به رو قبول نمیکنه و میگه مراد از بگیان اینه که نیستن دارن معامله میکنن. از عقد جاری نکردن این مراد به اما اگر عقد شد اوفو بالاغود. اوفو بزنگون گیه وجه به و آبوده. ما تو مجز باشن نداشن حق نداره معامل رو به هم بزن منسل عبد خب مشهور شو حضرت واسعه بین عامه مسلمین خیال مجلس ابو حنیفه مخاطب حالا اینش اشوجه خودش در تاریخ بغداد در اون قسمتی که توایع <تصفح> اعمال ابو حنیفه رو ذکر کرده ایشون معلومه می‌گی ابو رو گفتم که تو میگه خيار نداره قال رسول الله البیان به خيار فقال هوش روشن تو ظرف شده <تصفح> یعنی حتی حدیث رسول الله را ابو حنیفه مسخره می‌کرد این در فصل 4 جز 14 مراجعه فرمایید است لنا ببینید در اینجا این صاحب کدام همبلی لنا مارا و ابو هریره ان النبي صلی الله علیه و علیه و سلم لا تو سر رو لعبل و الغنم در اول حکم تکلیفی است لا تو سر رو لعبل بعد فرمود همان نفتاها اگر کسی خرید فه انهو به خیر نظرین این به خیر نظر خیار پس در حقیقت ابو حرره یعنی اشکال ابو حنیفه که حدیث ثابت نیست از کردم این رو یعنی باید با یک ثوابه علمی نگاه کرد فینهو به خیر نظره بعد هم یحنه بها این شایه هم سک درش مخواد خیر نظره خیاره این تعبیر خیلی نظرین دقیقه تر درباب خیار این شالا اگر آن وقت کردن در این کتاب هایی در مقاسب خیارات نوشتم اونجای نگاهی بکنیم نافعه. مثلا گفتن خیار سلطنت و فسخ یا ملک و فسخ الارد. یا سلطنت و فسخ الارد یا ملک و فسخ الارد. خیار رو ملک فسخ الارد گرفتن. لکن این ظاهرن خیار نیست درسته در خیار ما میتونیم فسخ رو کنیم یا امضا رو کنیم لیکن اضافهه بر این ملک فسخ و سلطنت فسخ که انما در مفهوم خیال خوابیده بهترین گزینه گزینه شن پیش هست دقت کنید زرافه دقیقه یعنی اون میاد اون چه که بهتره فقط یعنی خیال فقط سلطنت نیست سلطنت و اعمال سلطنت در اونی که اصله انفعه خیره اخیره این معنا اون ملک و فلسله اصطلاح اصطلاحیه این معنای که ما دارن خیاره از عجایب دینه که این معنا تو این آیه حدیثانه نهو به خیر نظرین خیار رو تفسیر نمیکنه فلذا به خیر نظرین بعد از یهلباها انشاء امسك و انشاء فسخ ها حالا آن در باب تعریف اختیار میگن ملک و فسخ العقد یعنی انشاء امسك و انشاء فسخ با که در واقع به نظر من این تعبیر حدیث دقیق‌تر و لطیف‌تر به خیر نظره درست انشاء امسك و انشاء فسخ با اینکه در این حال مجرد مشیت نیست اختیار هم هست که ما الان در فارسی الان کتاب های عربی ما آثر ما این که توی کاپی مثلا گزینه یک گزینه دو این الان عرب ها به جای گزینه خیار میگن سییاار چند گزینه داره اصطلاح هم خیاارت بپ ازار اول از ختان که گزینه یک دو معلوم میشه که در کلمه خیار اضافه بر سلطنت انسان بر فصل و قدرت انسان بر فصل یا ملک انسان بر فصلاه یک مقصیددی هم خواب و اون انتخاب کردن و نفره بهتر بودن فه این نبو به خیر نظره دردن یحله با انشاء امسک و انشاء رد ها و ساعن منتر شیرشی که خورده به جای شیرمه دارم خورما بشده این ببینید نفرموت پیغم برون میتونه نگه بذاره ازش ما به تفاوت بگیره پس امدهی پس بنابراین یواشه ها شوشن شد اینکه مرحوم شیخ یا مرحومی روانی و دیگران که در این فروع قائل به مسئله خیار شدن و این خیار هم است، معروف شد ریشه های این خیار تو مسئله ابل مسراته ریشه های این خیار در اونجاست که از سه همدر شده که میتونه نگه بداره میتونه برگردونه اگر برگردون به جای اون شیر البته که نداره نظر دیگه اون شیر، لكن فهمیده شده اینطور. و لذا همین من منکم را محل کلام شده بین اهل چرا محل کلام شده؟ همیشه؟ محل کلام اون چیزیه که بوکه بحث علما انجید اون چیزیه که مذکور نیست، مکتومی غیر مکتوب، مکتوب غیر بحثی. <laughs> اون غیر مکتوبش اینه که اگر شیر این حیوان دوشید اما نه شیر موجوده. بعضی‌ها گفتن معذالک حیوان رو که برگردون. تقریبا یک من، یگ که به ما داریم چیزی که هر حدود یک من رو به این آقا برگردونیم خرما، یک من خرما بشه. یکی از تفریعات این مسئله که اول اهل سنت اختلاف داره، حالا اگر شیر رو دوشون، یا توی احصار گذشته تازه دوشون، ما به درد اون میگه این حیوان تو سوی نادر اوضاع به درد خورد نداره،, و نداره. شیر نمیذرس درست، درست اما شیر موجوده. اگه دیوونه نگفتن خب اگه شی موجود حیوار در میشین باشه واقعا تموم شد دیگه اگه گفتن نه این دیگه تعبده پیغمبر اکرم الان ساعمتر یک من خورما هم باید بده ولو شیر هم دوشیده و موجوده و رحم ز نخورده و سالم هم اصلا خراب نشه به فرض تو ترشیده سالم هست مع ازلک باید یک من خورما رو بدن من باز اون بخشه میشم از محل کار ما خارجه بعد از اینکه ایشون این حدیث رو داره متفقان علی متفقان علی رو من توضیح دادم ما اصطلاحا وقتی متفقان علی این همه نظر کردن اما در اصطلاح اهل سنت خب به خاطر علی یعنی بخاری و مسلم اصطلاحیتونه وقتی مر متفقون علی بخاری و مسلم با هم نظر کردن اگر که یکیشون نرده رو رواه بخاری یا رواه مسلم البته اگر منتفه من علی باشه ارزشی بیشتری داره بعد از اون رواق بخاری تنها و بعد از اون مسلم تنها اصطلاحشون در ذهن باشه که و از توضیحات این نفته رو دادن و رواق ابن عمر انه نبی صلی اللہ علیه و آله و علیه و سلم انه من ابتاع محفلتن از کردیم ابتاع منه اشترام. یک کسی که یک حیوان گندهی خیلی محفله مثل کلمه محتل فارسی مجموعه یعنی مثلا بهش قضا داده بشه مثلا مدت هیشی بهشی ندوشیده شده پستانش یا خودش هیکلی پیدا کردن فحومه بلخیار سلاسات ایام این بحث خیاره ای... خیاره حیوان هم پیش ما سه روزه دقت میکنه این فحومه بالخیار سلاسات ایام م... به این نهره ما اهل سنت ندارد یکی از این برای خیار حیوانه فإن ردها رد معها مثل او مثل لبنها یک برابر یا دو برابر اون شیر غنحن غنح قمح یعنی گندم مثلا سه کیلو شیر بود یا سه کیلو گندم یا 6 کیلو گندم او بده رواه ابو داود این جزء مصادر در روسه شونه برسه یعنی توی سهاره سه سته هست جزه سعاسته کتاب ابو داود اما در ردیف اون کارته بعدیه البته باز از ابو داوود از مثل نماجه تر است، توی این رجال سعاسته از همشون زعیفتر این نماجه است. وله نهود تدریس به ما یختلف و سمن و به اختلافه این عیب نیست این تدریسه اظهار اکتفته ما بگیم اینطور بگیم بگیم از نظر فنی یعنی که الان اصلا برای دنیای فرد برای دنیای دانشکده های هو دانشگاه های هو دانشگاه آمون قامونه ما اینو ببینیم بگیم ما فرق بزنیم، بین تجلی و بین عین عین رو اصطلاحاً اسمش رو گذاشیم خروج خلق از خلقت اصلیه هرچی که از خلقت اصلی خارشون این عین این چون خروج از خلقت اصلی است و لذا عرشش تصور میشه میگه من نگه همی دارم رو عرش میکنم. اما تدلیس خروج از خلقت اصلی نیست تو دقیق حیوان به حالت خودشه عوض نشده از خلقتش در من یک صفت حیوان رو خلاف واقع نشان داده پس در تدلیس مشکل ما اثباتیه در این مشکل ما هر فرقشه شده فرکی اگر بخواهم پس اون در دنشجا و حقوق هم مغرف بکنی بیایم بکنیم سر این که در ای ما عرشقائلی چون اونجا مشکل ثبوتیه این حیوان شره مش... یه قسمت بدنش خلل داره. در خلقت اصلیش ای پیدا شده بیایم بکنیم در این اون ما به تفاوت معیب و صحیح رو بده اما در ما این مشکل اثباتیه گفت نکته پندیده هسته هم که بخواییم شهر بودیم چون ما به هر همهار دیده یعنی داشتیم محتاج هستیم وقتی با دنیای خاره صحبت میکنیم و اصول علمی صحبت بکنیم طبیعت کار اینه نمیتون بگیم تعبد بره باید و این ظرافت و حکم هم به این فوقها نشون میده که آمدن تدلیس رو گفتن خیار سناییه این رو گفتن خیار سلاسیه نکته چی شد؟ نکته که بل او به حسب ظاهر چه هم میاد یعنی بر اساس ظاهر میگه چطور تفاوت بین گوسند شر و گوسند به حساب کردیم تفاوت بین گوسندی که اینقدر شیر داره یا اینقدر شیر نداره رو حساب بکن چه فایده چرا در اونجا ما تفاوت می در اینجا ما تفاوت نمی میگیم یا ها امضا بکن یا رد بکن شد در بابه این در بابه ای یک مشکل ثبوتیه حیوان در واقع از اون خلقت اصلیش خارج شده، از این مشکل توضیح. در واقع تبدیلی از خلقت اصلی خارج شده، حیوان کارش نشده، ساله هیچ مشکل نداره شما تو مقام فروش، ولی دلم اگر باید رو تو میخواید گروت خونده میاد تیرانه، اصلا کاش تو آورده تو معامله. شما تو مقام فروش، ولی تو خونه خودتون دو زیاد میگن این حیوان رو بذاریم، شیر زیاده، این حرام بیشیه. تو مقام فروش مشکل داره بگه این مشکل مقام فروش مشکل واقعی و ثبوتی نیست مشکل اثباتیه شما که نگاه به حیوان روزی 10 کلوشیر میده وقتی میده چی میگه نوال روزی 3 کلو میده این جمع بوده پس مشکل مشکل اثباتیه اگر جایی مشکل اثباتی شد خیار سناییه اگر جایی مشکل ثبوتی شد خیار سلاسیه یه جایی مشکل سبوتی شد اونجا تفاوض بین سهی و معیل محره دقیق این برای بررسی این مسائل در مجراهی و حقوقی خودش بله ولانهو تدریزون به ما یختلف و سمن به اختلافه فوجه به رب که شمتا یکی تدریز داده که از کردیم بخشم تموم که ازمان داریم از <تصفيق> اللہ علا محمد محمد